ای امیران و پادشاهان و ثروتمندان از بین شما اندک اند کسانی که از خدا میترسان و در تمام راههای خدا درستکارند اغلب شما اینگونه هستید که به ملک و املاک دنیا دل میبندید و سپس تمام زندگی خود را در تحصیل آن سپری می کنید و مرگ را به خاطر ندارید هر انسان پولداری که نماز نمیخواند و به خدا اهتمام نمی کند گناه تمام نوکران و خدمتکارانش نیز به گردن اوست هر ثروتمندی که شراب می نوشد گناه تمام آنانی که زیر دست او در شرابخوری شریکش می شوند نیز به گردن اوست ای آقلان این دنیا جای ماندگار و همیشگی نیست به خودتان بیایید هر نوع بیاعتدالی را ترک کنید فقط شراب نیست که انسان را نابود می کند بلکه تریاک و هشیش و بنگ و انواع مخدرات دیگر و هر چیزی مسکر و مستی آور که تبدیل به عادت شود ذهن را از بین برند و سرانجام انسان را نابود می کند بنابراین از اینها دوری کنید ما نمی‌توانیم بفهمیم که شما چرا این چیزها را استفاده می‌کنید که در اثر آنها هر سال هزاران نفر که مثل شما به آنها اعتیاد داشتند از این دنیا کوچ می‌کنند و عذاب آخرت علاوه بر آن است مؤلف شریف در پاورقی می‌فرماید: علتی که باعث شد شراب این همه ضرر به اروپا وارد کند این است که حضرت عیسی علیه السلام شاید به دلیل بیماری یا از روی عادت قدیمی شراب می‌خوردند. اما ای مسلمانان پیامبر شما علیه السلام از هر گونه چیز خماراور پاک و معصوم بودند و در حقیقت معصوم هستند بنابراین شما در حالی که مسلمان خوانده می‌شوید، از چه کسی پیروی می کنید؟ قرآن مثل انجیل شراب را حلال قرار نمی دهد. پس شما با کدام دستاویز و بهانه شراب را حلال قرار می دهید؟ آیا قرار نیست بمیرید؟ ادامه مطلب انسانی پرهیزگار شوید تا عمرهایتان طولانی شود و از خدا برکت بیابید. زندگی با بیش از حد خوشگذرانی زندگی لعنتی است. بیش از حد بدخلق و بیاتفه بودن زندگی لعنتی است. بیش از حد بی ورزیدن به خدا و بیتوجهی به همدردی با بندگانش زندگی لعنتی است. در روز قیامت هر ثروتمندی درباره حق خداوند و بندگانش همان گونه بازخواست می شود که فقیر می شود. بلکه سروتمند بیشتر از فقیر بازخواست می شود. پس چقدر بدبخت از شخصی که با تکیه به این زندگی کوتاه از خدا کاملا روی برمیگرداند و چیزهایی را که خدا حرام قرار داده است چنان با بیباکی و جسارت استفاده می کند که گوی آن چیزهای حرام برای وی حلال است. و در عصبانیت مانند دیوانه ها برای فحاشی یا زخمی کردن یا کشتن کسی هم حاضر می شود و در زمان برانگیختگی شهوتهایش هایش روش های را به منتها می رساند. پس او خوشحالی واقعی را به دست نخواهد آورد تا اینکه بمیرد ای عزیزان شما فقط برای چند روز در دنیا آمده اید و از آن هم خیلی گذشته است پس مولای خود را ناراحت نکنید اگر یک دولت انسانی که قوی باشد از شما ناراحت شود میتواند نابودتان کند پس حد بزنید که از خشم خدا چطور میتوانید در امان بمانید اگر در نظر خدا متقی قرار بگیرید، هیچ کسی نمی تواند نابودتان کند و او خودش از شما محافظت خواهد کرد و دشمنی که در پی گرفتن جانتان است نمی تواند بر شما غلبه کند. اما در غیر این صورت، هیچ کسی محافظتان نخواهد بود و شما از ترس دشمنان یا به آفات در رنج و مهنت زندگی خواهید کرد و روزهای پایانی عمرتان با غم و اندوه فراوانی سپری خواهد شد. خدا پناه کسانی می شود که با او همراه می شوند. پس به سوی خدا بیایید و هر گونه مخالفتش را ترک کنید و در انجام فرزه هایش تنبلی و سستی به خرج ندهید و به بندگانش با زبان یا دستانتان ظلم مکنید. ملف شریف در پاورقی میفرماید شخصی که خشم و غضب خود را بر نوع بشر افزایش می دهد در نهایت با غضب هلاک می شود. به همین خاطر خداوند در سوره فاتحه یهود را مغضوب علیهم نام نهاده و این اشاره به این نکته بود که در روز قیامت هر مجرمی طعم غضب الهی را میچشد اما کسی که ناحق در دنیا خشم می‌ورزد وی در همین دنیا مذهی خشم الهی را می‌چشد مسیحیان نسبت به یهودیان در دنیا مورد خشم خدا قرار نگرفتند به این خاطر در سوره فاتحه نامشان زالی نهاده شده است کلمه زالین دو معنی دارد یکی این که آنها گمراه هند و دوم این که آنان گم خواهند شد در این معنی به نظر من برایشان بشارتی وجود دارد که اینان در یک زمانی از مذهب دروغی نجات یافته و در اسلام گم می و رفته رفته عقاید مشکانه و ناقص و یا رسوم شرمآور را رها کرده و به رنگ مسلمی در خواهند آمد و موهد و یک تا پرست خواهند شد خلاصه در معنی دوم کلمه زالی یعنی محو شدن چیزی در چیز دیگر و گم شدن برای حالت آینده مذهب مسیحی پیشگویی وجود دارد. ادامه مطلب و همواره از قهر و غضب الهی بترسید که همین راه نجات است. ای علمای اسلام در تکذیب کردن من عجله نکنید چون انسان بسیاری از اسرار را نمی زود متوجه شود. پس از شنیدن سخنی بلافاصله برای رد آن آماده نشوید چرا که این از طریق تقوا نیست اگر در شما بعضی از اشتباهات نمی بود و چنان چه معانی بعضی احادیث را معکوز نفهمیده بودید در آن صورت آمدن حکم و داور کلا ابس و بیهوده بود برایتان اینجای عبرت وجود دارد که به چیزی که بسیار اصرار می‌ورزید جایی که شما قدم نهاده اید یهود هم قبل از شما به همانجا قدم نهاده بودند یعنی چنان که شما منتظر ظهور مجدد حضرت عیسی علیه السلام هستید آنها نیز منتظر ظهور دوباره یه الیاس نبی بودند و می‌گفتند مسیح آن زمان ظهور می‌کند که الیاس که به آسمان برده شده بود دوباره به زمین بازگردد و هر شخصی که پیش از آمدن الیاس ادعای مسیح بودن کند کاذب و دروغگوست و آنها نه تنها از روی احادیث چنین عقیده‌ای داشتند بلکه کتاب خدا را که صحیفه ملکی پیامبر است در اثبات این عقیده خیش تقدیم نمودند اما حضرت عیسی علیه السلام اعلام کردند که برای یهود مسیح موعود هستند در حالی که الیاس از آسمان پایین نیامده بود و نزول ایلیا ظاهرا شرط ادعای مسیح بودن بود پس با این اعلام حضرت مسیح تمام عقیده های یهود باطل ثابت شد و آنچه که یهود میپنداشند که ایلیا نبی با جسم انصری خود از آسمان ناصل خواهد شد معنی آن سرانجام این آشکار شد که شخصی دیگر با خلق و خوی الیاس ظهور میکند و این معانی را خود حضرت عیسی بیان فرمودند همان حضرت عیسی که شما ایشان را دوباره از آسمان نازل می کنید پس چرا شما در همانجا لغزش می که قبل از شما یهود خورده اند. هزاران یهود در کشورتان زندگی می کنند می توانید از آنها بپرسید که آیا عقیده ایشان همین نیست که در حال حاضر شما دارید ابراز می پس خدایی که به خاطر عیسی ایلیا نبی را از آسمان نازل نکرد و در نتیجه عیسی مجبور شد که در مقابل یهود تعبیراتی بیاورد پس این خدا به خاطر شما چرا عیسی را نازل خواهد کرد کسی را که دوباره نازل میکند داوری و حکم خود او را شما منکر میشوید اگر شک دارید صدها هزار مسیحی در این کشور زندگی میکنند و نیز موجود است می توانید از آنها بپرسید که آیا حقیقت این نیست که حضرت عیسی همین فرموده بود که ایلیا که قرار بود دوباره نازل شود خود یوحناست یعنی یحیی و وی با گفتن این حرف تمام امیدهای دیرینه یهود را با خاک یکسان کرد اگر اکنون این امر ضروری است که حضرت عیسی از آسمان بازگردد در این صورت او می تواند صادق قرار بگیرد چرا که چنانچه بازگشتن از آسمان داخل سنت الله بود آنگاه چرا الیاس باز نگشت و چرا یحیی و الیاس قرار داد و تعویل پیشه کرد در اینجا برای خردمندان جای تعمل و تعمق دارد و همینطور مطابق عقیده تان مسیح ابن مریم از آسمان برای این کار خواهد آمد که به همراه مهدی برای به زور مسلمان کردن مردم به جنگن. این عقیده است که اسلام را بدنام می کند در کجای قرآن کریم آمده که اجبار در مذهب جایز است؟ در قرآن شریف می‌فرماید: لا اکراه فی الدین. سوره بقره، آیه پنجاهو هفت. یعنی در دین هیچ اجبار و اکراهی نیست. پس در این صورت چگونه به مسیح ابن مریم اختیار به کار گرفتن جبر و زور داده خواهد شد که وی بجز پذیرفتن اسلام یا کشتن طرف چیز دیگری را قبول نکند؟ و حتی جزیه را نیز قبول نکند این تعلیم در کجای قرآن و در کدام جز و در کدام سوره آمده است معلف شریف در پاورقی می‌فرماید: اگر بگویید که برای عرب ها هم دستور داده شده بود که آنها را به اجبار مسلمان کنند، این خیال از هیچ جای قرآن شریف ثابت نمی شود بلکه در مقابل آن این ثابت می‌شود که چون تمام عرب‌ها به حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم بسیار اذیت و آزار رسانده بودند و بسیاری از اصحاب مرد و زن را به قتل رسانده بودند و بقیت و الصیف و بازماندگان را از وطنشان اخراج کرده بودند لذا تمام این کسانی که مرتکب قتل شده بودند یا در جرم قتل کمک کرده بودند در نگاه خداوند متعال به دلیل ریختن خون سزاوار کشته شدن گشته بودند و حکم قصاص آنها در اصل اعدام بود. اما خدای ارهم و راهمین به آنان این تخفیف داد که چنانچه احدی از آنان به اسلام بگرود، جرم گذشته اش که جزای آن اعدام است بخشیده می شود. پس کجا این صورت رحم و مهربانی و کجا جبر و اکراح؟ ادامه ای مطلب تمام قرآن به تکرار اعلام می‌دارد که در امر دین هیچ اجباری در کار نیست و به طور آشکار بیان می‌کند که جنگ و نبرتایی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صورت گرفت هیچ کدام آن برای گسترش اسلام با زور و جبر نبود بلکه برای عقوبت کردن کسانی بود که عده کسیری از مسلمانان را کشته بودند و بعضی را از وطنشان اخراج کرده بودند و بینهایت ظلم و ستم روا داشته بودند چنانکه خداوند متعال میفرماید: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لغدیر. سوره حج آیه چهل. یعنی به مسلمانانی که کافران با آنها میجنگند به خاطر مظلوم بودنشان اجازه مقابله کردن داده می شود و خداوند قادر است که به آنها کمک کند و یا جنگ هایی بودند که به خاطر دفاع از خود در گرفته بودند یعنی افرادی که برای نابودی اسلام پیش قدم میشدند یا به زور از نشر اسلام در کشور خود جلوگیری میکردند با آنها برای حفظ خود مختاری یا برای به دست آوردن آزادی در کشور جنگ می شده است در غیر این سه صورت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خلفای مقدسشان هیچ جنگی نکردند بلکه اسلام به قدری ظلم و ستم ملت‌های دیگر را تحمل کرده که مثال آن را در هیچ جای دیگری پیدا نمی‌کنید پس عیسی مسیح و حضرت مهدی چنان افرادی خواهند بود که بلافاصله پس از بعثت شروع به قتل مردم خواهند کرد تا جایی که حتی از هیچ اهل کتابی جزیه هم قبول نخواهند کرد و آیه حتی یؤتول جنسیه ان یعد و هم ساغرون را نیز مسخ خواهند کرد سوری توبه آیه 29 آنها چنو حامی اسلام خواهند بود که بلافاصله پس از به آیات آیت قرآن شریف را منسوخ خواهند کرد که در زمان حضرت پیامر اکرام صلی الله علیه و سلم هم منسوخ نشده بودند و آیا پس از این همه تحول باز هیچ اشکالی در ختم نبوت وارد نخواهد شد در این بره، از زمانی که 1300 سال از دوران نبوت گذشته است و اسلام به 72 فرق تقسیم شده است، وظیفه مسیح صادق، این باید میبود که دلها را فتح می‌کرد، اما با دلایل خود، نه به زور شمشیر. و عقیده صلیبی را با دلیل و مدرک قطعی می‌شکست. نه اینکه شروع کند به شکستن سالیب‌هایی که با نقره یا طلا یا مس یا چوب ساخته شده اند. اگر متوسل به جبر و زور شوید، همین عمل زور و اکراهتان دلیل کافی بران است که شما بر حقانیت خود هیچ دلیلی ندارید. معلف شریف در پاورقی می نویسد، بعضی از نادانها به من اعتراض می کنند چنان که صاحب مجله منار همین اعتراضا کرد که چون او در کشور انگلیسی ها زندگی می لذا از جهاد من می کنن. این نادانها نمیدانند که اگر قرار بر این بود که من این دولت را با درو خوشحال کنم در آن صورت چرا باید من به کرات و مراد گفتم که عیسی مریم از صلیب نجات یافت و در سرنگیر کشمیر به مرگ طبیعی وفات یافت و او نه خدا بود و نه پسر خدا آیا مردم متدین انگلیسی به خاطر این حرف از من ناراحت و بیزار نخواهند شد پس گوش کنید ای نادانها من هیچگاه چاپلوسی این دولت نمی کنم بلکه حقیقت این است که این چنین دولتی که به دین اسلام و رسوم دینی آن هیچ حمله ای نمی کند و نه برای ترویج و تبلیغ دین خود علیه ما شمشیر می کشد. از روی قرآن شریف با این چنین دولت جنگ مذهبی را انداختن حرام است چرا که آن هم هیچ جهاد مذهبی علیه ما نمی کند و به جای آوردن شکر و سپاس این دولت به این دلیل بر مواجب است که ما کارمان را حتی در مکه و مدینه هم نمیتوانستیم انجام دهیم اما زیر این دولت می توانیم انجام دهیم این حکمت خدا بود که مرا در این کشور به دنیا آورد پس آیا من این حکمت خدا را تخفیف نمایم چنان که در این آیه قرآن شریف و وینهما الی ربته ذات قرار و معین سری مؤمنون آیه 51 این امر را تفهیم میکند که پس از واقعه صلیب ما عیسی مسیح را از مصیبت صلیبی نجات داده و وی و مادرش را روی آن تپه بلند جای دادیم که جای آرامی بود و در آن چشمه ها روان بود یعنی به عبارت دیگر به سرینگیر کشمیر بردیم. همینطور خداوند متعال مرا بر تپه بلند این دولت جای داد که دست نگران و مفسدان نمیتواند با آنجا برسد و آرامی است و در این کشور های علوم راستین جاری است و من از حملات مفسدان در امن و قرار هستم پس در این صورت آیا بر من واجب نبود که از التفات این دولت شکر سپاس به جای بیاورم ادامه مطلب هر نادان و ظالم سرشت وقتی که در دلیل و برهان کم میآورد دست خود را به سوی شمشیر یا تفنگ دراز می کند اما چنین مذهبی هرگز و هرگز نمیتواند از سوی خدا باشد که تنها با تکیه به زور شمشیر میتواند گسترش یابد نه به طریق دیگر چنان که نمیتوانید از چنین جهادی دست بکشید و به خاطر این حرف خشبین شده و نیکوکاران را دجال و ملحد نام می نهید در این صورت من به این دو جمله سخن خود را خاتمه می دهم که قل یا لا الگفیرون لعبودومت تعبدون. سوره کافرون آیات دو و سه به هنگام تفرقه و اختلافات درون امت مهدی و مسیح مهمتان روی چه کسانی شمشیر می آیا نزد اهل سنت اهل تشیع سزاوار این نیستند که بر علیه آنها شمشیر برداشته شود؟ و آیا نزد اهل تشیع سنیها سزاوار این نیستند که همه با شمشیر نیست و نابود شوند؟ پس در حالی که فرقه های درونیتان طبق عقیده تان مستوجب عقوبت هستند، پس شما با چند نفر جهاد خواهید کرد. اما به یاد داشته باشید که خداوند محتاج شمشیر شما نیست. او دین خود را با نشانه های آسمانی گسترش خواهد داد و هیچکس نمیتواند مانع او شود. و به خاطر بسپارید که عیسی دیگر هرگز و هیچ نازل نخواهد شد. چرا که اقراری که وی طبق آیه یه و فیدنی، سوره مائده ماعده آیه یه صد در روز قیامت خواهد کرد. آن وی به وضوح احتراف می کند که دوباره به دنیا باز نخواهد گشت و در روز قیامت همین عضو را تقدیم خواهد کرد که من از منحرف شدن مسیحیان خبر نداشتم. اگر او قبل از قیامت به زمین باز می گشت آن صورت آیا باز هم می از این پاسخ را بدهد که من از منحرف شدن مسیحیان خبر نداشتم؟ بنابراین وی در این آگه به وضوح اعتراف می کند که من دوباره به زمین باز نگشتم و اگر قرار بود وی قبل از قیامت به دنیا برگردد و چهل سال بماند در این صورت او در محضر خدا دروغ می گوید که من از وضعیت مسیحیان خبر ندارم او باید بگوید بار دومی که به زمین رفتم نزدیک به چهل میلیون مسیحی را روی زمین یافتم و همه آنها را دیدم و از منحرف شدنشان کاملا با خبرم و من لایق جایزه و پاداشم چرا که تمام مسیحیان را مسلمان گرداندم و صلیب را شکستم این چه دروغی است که عیسی میگوید من خبر نداشتم خلاصه در این آیه به روشنی اعتراف حضرت وارد شده است که او دوباره به دنیا بر نخواهد گشت و حقیقت همین است که عیسی فوت شده است و قبرش در سرنگیر محله خانیار واقع است معلف در رابطه با فوت حضرت عیسی می نویسد مشهورترین روزنامه ایتالیای جنوبی کری اردلا خبر عجیب زیر را منتشر کرده است در سیزده هجوی سال 1879 میلادی راهب پیری در اولوشلیم به نام کورمرا که در زندگیش ولی بزرگ مشهور بود مقداری ارث از خودش به جای گذاشته و فرماندار آنجا خانوادهش را پیدا کرده و دویس هزار فرانک معادل صد و و پنجاه روپیه تحویلشان داد ارتش متشکل از سکه های کشورهای مختلف بود این سکه ها از غاری پیدا شده بود که آن راهب از مدت مدیدی در آنجا زندگی میکرد. به علاوه این سکه ها، بعضی برگه ها نیز به دست خانوادهش رسیده که آنها نمی توانستن نوشته آن را بخوانند. چند تن از عدیبان و فازلان زبان عبرانی فرصتی یافتند که نوشته ها را ببینند. آنها پس از دیدن برگه ها متوجه این موضوع عجیبی شدند، که این نوشته ها به زبان ابرانی بسیار قدیمی است و وقتی توانستن آنها را کنند، در آنها عبارت زیر نوشته شده بود. من پتروس ماهیگیر و خادم پسر مریم به نام خدا و مطابق مرزی خدا به مردم این گونه مورد خطاب قرار می دهم. سپس این نام اینگونه به پایان می رسد. من پتروس ماهیگیر در سن نوت سالگی پس از سه عید فس یعنی پس از سه سال از مرگ آقا و مولای خود، عیسی مسیح پسر مریم در مکان بولیر نزدیک خانه مقدس خدا تصمیم گرفتم این کلمات محبت آمیز را بنویسم. آن عدیب ها اینگونه استنتاج کردند که این نسخه به زبان پتروس تعلق دارد. و سازمان بایبل لندن نیست همین نظر را دارد و آن پس از بررسی های کامل می‌خواهد در ازای این نوشته ها به وارستان چهارصد هزار لیره معادل دویست و سی و هزار و پانصد روپیه بدهد. دعای ایسابن مریم گفت سلام بر هر دوی آنها. او گفت ای خدای من. من توان این را ندارم که چیزی را که بد می دانم به آن غلبه پیدا کنم و من آن نیکی را حاصل نکردم که آرزویش را داشتم افراد دیگر اجر خود را در دست دارند و من ندارم بزرگی من در کار من است هیچ شخصی در وضعیت بدتر از من نیست ای خدا که از همه بالاتری گناهان مرا ببخش ای خدا نگذار من مورد اتهام دشمنان خیش قرار بگیرم و نزد دوستان خیش تاخیر شوم مبادا تقوایم موجب شود که دچار مصایب شوم نگذار که همین دنیا بزرگترین آرزو یا هدفم گردد و شخصی را که به من رحم نکند بر من حاکم نگمار ای خدایی که مهربانترین مهربانانی از روی رحم خیش این دعایم را مستجاب کن تو به همه آنها رحم میکنی که نیاز به رحم تو دارند و در ادامه مؤلف شریف در رابطه با واقع شدن قبر حضرت عیسی در سرنگیر محله خانیار میفرماید یک یهود نیز این مطلب را تایید کرده است که این قبر واقعا شبیه قبرهای پیامبران یهود بنا شده است ادامه یه مطلب اکنون خدا خودش نازل خواهد شد و با مردمی که با حقیقت میجنگند خودش خواهد جنگید جنگیدن خدا جای اعتراض ندارد چون آن هم یکی از نشانه های اوست اما به جنگیدن انسان ها می اعتراض کرد چون آن حکم جبر و اکراه را دارد شهد شاهد من بنی اسرائیل شهادت یکی از علمای تورات درباره قبر مسیح من شهادت می دهم که نزد آقای میرزا غلام احمد کادیانی نقشه دیدم و تحقیق او درست است و آن قبر از قبور بنی است و مال یکی از بزرگان بنی اسرائیل است من این نقشه را دیدم و این شهادت را نوشتم امروز در تاریخ 12 جوان 1899 میلادی سلمان یوسف یساغ تاجر آقای سلمان یهودی است در روبروی من این شهادت را نوشت مفتی محمد صادق بروی منشی دفتر حسابداری عمومی لاهور اشهد بالله ان هذا قدب سلمان بن یوسف و این رجل من اقای بنی اسرائیل. امضا سید عبدالله بغدادی افسوس بر این مشایخ و آخوندها اگر در وجود خیش امانت و درستکاری می داشتند راه تقوا پیشه میکردند و برای اطمینان خاطر به من مراجعه می کردن. خداوند متعال بر انسانهای پاک نسبت به من تو معنینه و آرامش خاطر نازل کرده است اما کسانی که از خاک ابوجهل آفریده شده اند همان راهی را انتخاب می‌کنند که ابوجهل برگزیده بود یکی از آخوندها در نامه‌ای از میرت اطلاع داده است که در امرتسر اجتماع انجمن ندوت العلماء برگزار می‌شود و در آنجا باید به بحث و مناظره پرداخت اما گفتنی است که اگر نیت مخالفین خیر بود و هیچ به فکر شکست یا پیروزی در بحث نمی نمی‌بودند در آن صورت هیچ نیازی نداشتند که برای اطمینان خاطر خیش به ندوه و غیره مراجعه کنند ما علمای ندوه را جدا از علمای امرتسر نمیدانیم. آنها با هم یک عقیده دارند و از یک جنس هستند و شبیه همند هر کسی مختار است که به قادیان بیاید اما نه برای بحث بلکه برای طلب حق. و سخنان ما را گوش فراده هد و اگر شک و تردیدی باقیمان آن را از طریق تواضع و ادب از ما بخواهد که رفت نماییم و تا زمانی که وی در قادیان اسکان نماید مهمان ما خواهد بود ما هیچ نیازی به علمای ندوه و غیره نداریم به علمای امرت نیز هیچ حاجتی نیست همه آنها دشمن حقند اما با وجود آن در دنیا حق و راستی دارد گسترش میابند آیا این معجزه عظیم و شأن خداوند متعال نیست که او 20 سال پیش در کتاب براهین احمدیه از طریق الهام خود خبر داده بود که مردم بسیار تلاش خواهند کرد که تو ناکام شوی و تمام سعی و کوشش خود را در این راستا بسیج خواهند نمود اما سرانجام من از شما جماعتی عظیم تشکیل خواهم داد این وحی الهی متعلق به زمانی است که حتی یک نفر هم با من نبود سپس بعد از اعلام ادعای من مخالفان تا می توانستند علیه من سعی و تلاش کردند اما مطابق پیشگویی این جماعت گسترش یافت و اکنون تا تاریخ امروز تعداد افراد این جماعت در هند بریتانیا بالای 100 هزار نفر است. ندوت ولما اگر مرگ را به خاطر دارند برااهین احمدیه و اوراق دولتی را ببینند و بگویند که آیا این مجزه است یا خیر؟ پس در حالی که هم قرآن و هم موجزه رای داده شد، آنگاه بحث برای چیست؟ همینطور، پیران و پیرزادگان این کشور چنان نسبت به دین بی تفاوتند و شبانه روز در بدعات خود مشغولند که هیچ خبری از مشکلات و آفات اسلام ندارند. چنان که به مجالسشان بروید، به جای قرآن شریف و کتابهای احادیث از پا به بدعاتی مثل تار و تنبور و دنبک و قوالی و غیره را میبینید. اما با وجود همه اینها ادعای رهبری مسلمین نیز دارند و لاف پیروی از حضرت پیامبر اکرام صلی الله علیه و وسلم هم می‌زنند و بعضی از آنها لباس زنانه به تن میکنند و به دستان خود حنا میزنند و علنگو به دست میکنند و بیشتر از تلاوت قرآن شریف خواندن اشعار را می‌پسندند اینها چنان زنگارهای قدیمی است که فکر نمیکنم زودود شود. مگر اینکه خداوند متعال قدرت های خاص خود را نشان دهد و از اسلام حمایت نماید نصیحتی به زنان در عصر حاضر زنان نیز گرفتار بعضی از بدعات شده اند آنها نسبت به تعدد نکاح نظر بسیار بدی دارند گویه به قرآن شریف ایمان ندارند آنها نمیدانند دانند که شریعت خداوند هر نوع درمان را در بر دارد اگر در اسلام امکان تعدد نکاح وجود نداشت در این صورت شرایطی که برای نکاح دوم مرد پیش میآید برای حل آن در شریعت اسلامی هیچ درمانی یافت شد. مثلا چنان چه زن دیوانه یا مجزوم بشود یا برای همیشه به بیماری گرفتار شود که او را ناکارآمد بکند یا دچار وضعیتی گردد که آن زن قابل ترحم و ناتوان شود و به این دلیل مرد نیز قابل ترحم گردد چرا که توان تحمل زندگی مجردی را نداشته باشد در این صورت برقوای مرد ظلم است که به او اجازه نکاه دوم داده نشود در حقیقت شریعت خداوند متعال با توجه به همین امور برای مردان این راه را باز گذاشته است و در هنگام ناچاری و شرایط اضطراری برای زنان نیز این راه باز است که اگر مرد ناتوان شود زن میتواند به وسیله حاکم دادخواست طلاق بدهد و از شوهر خود جدا شود شریعت خداوند مانند داروخانه است لذا اگر داروخانه این گونه است که برای هر بیماری در آن دارویی نیست در آن صورت این داروخانه نمیتواند حیات خود را ادامه دهد پس کمی بیاندیشید. آیا این حقیقت ندارد که بعضی این چنین مشکلات به مردان پیش می آید که به دلیل آن آنها مجبور به نکاح دوم می شود؟ آن شریعت به چه درد می خورد که برای همه مشکلات راه حل نداشته باشد؟ در انجیل ببینید که شرط طلاق فقط زنا گذاشته شده است و ما صدها نوع امور که باعث دشمنی جانی بین مرد و زن می شود هیچ در نظر گرفته نشده به همین خاطر ملت مسیحی نتوانست این نخیصه را تحمل کنند و انجام کار در آمریکا مجبور شدند که برای طلاق قانونی تصویب کنند. بنابراین اکنون کمی بیاندیشید که با تصویب این قانون انجیل به کجا رسید؟ و ای خانومها نگران نباشید. کتابی که به شما داده شده است مثل انجیل نیاز به دستکاری انسان ندارد. در این کتاب چنان که حقوق مردان محفوظ است حقوق زنان نیز محفوظ است. اگر زنی به تعدد ازدواج همسرش اعتراض دارد میتواند به وسیله حاکم طلاق بگیرد. وظیفه خدا این بود که اوضاع مختلفی که قرار بود به مسلمین پیش بیاید درباره آن در شریعت خود راه حل دهد تا شریعت ناقص نماند. پس شما ای خانومها. وقتی همسرانتان قصد ازدواج دوم داشته باشند از خداوند متعال شکایت نکنید بلکه دعا کنید که خدا شما را از مصیبت و بلا در امان نگهدارد بدون شک آن مردی که دو زن داشته باشد و بینشان انصاف را رعایت نکند بسیار ظالم و در خور بازخواست است اما شما با نفرمانی خدا خود را مورد قهر الهی قرار ندهید هر کسی به سبب کار خود بازخواست می شود اگر شما در نگاه خداوند متعال نیک و پارسا باشید همسرتان نیز نیک و پارسا می شود اگرچه شریعت با توجه به مسائل مختلف تعدد ازدواج را جایز قرار داده است اما قانون غذا و قدر برایتان باز است اگر قانون شریعت را نمی توانید تحمل کنید پس با دعا از قانون غذا و قدر استفاده کنید چون قانون غذا و قدر می تواند بر قانون شریعت غلبه پیدا کند. پس تقوا پیشه کنید و به دنیا و زینت های آن دل مبندید و به قبیله و طایفه خود افتخار مکنید. هیچ زن دیگری را به سخره نگیرید. از همسرانتان تقاضاهایی نکنید که از وزشان خارج است. تلاش کنید که در حال معصوم و پاک دامن بودن وارد قبر شوید. در انجام فرایض خدا مثل نماز و زکات و غیره تنبلی مکنید. از دل و جانتان مطیع همسر خیش باشید. آبروی آنها در دست شما قرار دارد. بنابراین این مسئولیت را چنان به نحو احسن انجام دهید که در نزد خداوند متعال از زمره سالهات و قاننات شمرده شوید. اسراف نکنید و اموال همسر خیش را بیجا خرج نکنید. خیانت و دزدی مکنید. گله نکنید زنی به زنی دیگر یا به مردی تهمت نزند. خاتمه تمام این پنت هایی که نوشته ایم به منظور این بوده تا جماعت ما در طرز از خداوند متعال پیشرفت کند و سزاوار این گردند که از خشم او که بر روی زمین شعل است در امان بماند و در این ایام شیوع تا اون به طور ویژه از آن نجات داده شوند. تقوای حقیقی آه که بسیار کم از تقوای حقیقی خدا را راضی می کند و خداوند متعال متقی کامل را نه به طور معمولی بلکه به طور نشانه از بلا نجات می دهد هر انسان هیلگر و نادان می تواند ادعای متقی بودن کند اما متقی تنها آن کسی است که از روی نشانه خدا ثابت شود که متقی است هر کسی می تواند بگوید که من خدا را دوست دارم اما خدا را تنها همون کسی دوست دارد که عشقش با شهادت آسمانی به اثبات رسد و هر کسی می تواند بگوید که مذهب من حق و راستین است اما مذهب حق و راستین متعلق به شخصی که توسط آن در همین دنیا به نور نایل می آید و هر کسی می تواند بگوید که من رستگار می شوم اما کسی در این گفته خود صادق است که در همین دنیا انوار رستگاری را مشاهده می مینماید. بنابراین تلاش کنید که عزیز خداوند شوید تا از هر آفتی نجات داده شوید. متقی کامل از تا اون نجات داده خواهد شد چرا که او در پناه خداوند است. پس متقی کامل شوید. شما هر آنچه که خداوند درباره اون فرموده است شنیده‌اید و آن آتشی از خزب اوست. پس خودتان را از این آتش نجات دهید شخصی که واقعا از من پیروی می‌کند و هیچ خیانتی در وجودش نیست و کسالت و قفلت ندارد و نیکی و بدی را جمع نمی کند از آن نجات داده خواهد شد اما کسی که در این راه با تنبلی قدم برمی‌دارد و روی راه‌های تقوا به طور کامل قدم نمی‌زند و یا به دنیا و مادیت گرایش دارد و دارد خود را در امتحان قرار می‌دهد در هر بود و جنبه از خداوند متعال اطاعت کنید. هر کسی که خود را در زمره بیعت کنندگان تلقی می کند، اکنون فرصت دارد که با مال خود نیز به این جماعت خدمت کند. کسی که توان پرداخت یک پیسه دارد، وی برای حزینه جماعت هر ماه یک پیسه بدهد. و کسی که وز اجازه می دهد که یک روپیه ماهیانه پرداخت کند، وی یک روپیه را ماهیانه پرداخت کند. و به علاوه مهمانخانه فعالیت های دینی نیز نیاز به هزینه های فراوان دارد صدها مهمان میآیند اما تاکنون به علت نبود وسع مالی برای مهمانان آنگونه که باید و شاید هیچ ساختمانی با امکانات راحت وجود ندارد و تدارک های فراوان هم دیده نشده است مسجد نیز نیاز به توصیع دارد بخش تعلیفات و انتشارات نسبت به مخالفان بسیار ضعیف است از طرف مسیحیان پنجا هزار رساله و نوشته های مذهبی منتشر می شود و از طرف ما به طور مرتب حتی یک هزار رساله هم ماه به ماه به چاپ نمی همین امور است که به خاطر آن هر بیت کننده باید ماهیانه به قدر وصع خیش کمک مالی کند تا خداوند متعال نیز وی را کمک کند کمکی که بدون هیچ وقف ماه به ماه به ما برسد اگر چه کم هم باشد از آن کمکی بهتر است که پس از فراموشی مدت مدیدی در یک زمانی خود به خود در اثر فکر خود داده شود صدق و اخلاص هر کسی از خدمت او شناخته می شود ای عزیزان این زمان زمان خدمت دین و اهداف آن است و آن را غنیمت بشمرید که دوباره هیچگاه به دست نخواهد آمد لازم است هر کسی که زکات پرداخت می کند زکات خود را به همین جا بفرستد و هر عضو جماعت باید از اسرا و ولخرجی دوری کند و در این راه پول خود را انفاق نماید و در هر حال صدق را از خود نشان دهد تا به انعام فضل و روح القدس دستیابد چرا که این پاداش برای کسانی در نظر گرفته شده است که در این جماعت وارد شده اند تجلی روح القدسی که بر پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد از هر تجلیه دیگر برتر است. روح القدس گاهی بر بعضی از پیامبران به شکل کبوتر ظاهر شد و بر بعضی از پیامبران و اتار خدا به شکل گاو ظاهر شد. و بر بحثی ها به شکل لاکپشت و ماهی ظهور کرد و تا وقتی که انسان کامل یعنی پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مبعوث نشدند زمان ظهورش به شکل انسانی فرا نرسید وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند روح القدس نیست به علت انسان کامل بودن حضرت پیامبر بر ایشان به شکل انسان ظاهر شد و چون این تجلی روح القدس بسیار خوی بود که از زمین تا افق آسمانها را در بر گرفت به این خاطر تعالیم قرآنی از شرک محفوظ ماند اما چون بر پیشوای مذهب مسیحیت روح القدس به شکل بسیار ضعیف یعنی کبوتر ظهور کرده بود لذا روح ناپاک یعنی شیطان بر آن دین غلبه پیدا کرد و به قدری عظمت و قدرت خود را نشان داد که به شکل یک های عظیم و جسه حملهور شد همین دلیل است که قرآن شریف گمراهی و زلالت مسیحیان را در رتبه بندی در رتبه اول از تمام گمراهی های دیگر قرار داده است و فرموده که نزدیک از آسمان و زمین متلاشی شوند و تکه تکه گردند چرا که روی زمین این گناه عظیمی انجام داده شده که انسان را پسر خدا قرار داده اند. در ابتدای قرآن شریف نیست رد مسیحیان و ذکرشان آمده است چنان که از آیه ای که نابود او والد لین می شود و در پایان قرآن شریف نیست رد مسیحیان و ذکرشان رفته است. چنان که سوریه قول هو الله عهد الله لم یلد ولم یولد برداشت می شود. اخلاص و در وسط قرآن شریف نیست درباره فتنه دین مسیحی گفته شده است. چنان که از آیه تکه در یتفت در نامین هو استنبات می شود سوره مریم آیه 91 از قرآن برمیآید که از زمان آفرینش زمین هیچگاه که این گونه به پرستش مخلوق و کز تأکید نشده بود به همین دلیل تنها مسیحیان مرای مباهله فراخوانده شدند نه شکی دیگر در این امر چون نکته نهفته بود که قبل از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روح القدس به شکل پرندگان یا جانوران ظاهر میشد. آدم فهمیده خودش میتواند آن را بفهمد. ما تنها به این حد اشاره می کنیم که انسانیت حضرت پیامبر اکرم ما صلی الله علیه و سلم آنقدر زبردست و قوی بود که روح القدس را نیز به سوی انسانیت کشید. بنابراین شما با وجود تابع بودن این پیامبر برگزیده چرا حمت خود را از دست می دهید از خود آن نمونه ها را نشان دهید که فرشتگان هم در آسمان از صدق و صفایتان تعجب کنند و بر شما درود و صلوات بفرستند شما نوعی مرگ را پیشه کنید تا زندگی یابید و درون خیش را عاری از جوشش های نفسانی کنید تا خدا در آن نازل شود از طرفی به طور کامل قطع رابطه کنید. و از طرف دیگر ارتباط کامل برقرار کنید. خدا در این راستا کمکتان کند. اکنون کتاب را به پایان می رسانم و دعا می کنم که این تعلیم من برای شما مفید واقع شود و در شما چنان تغییر ایجاد شود که ستاره آسمان بگردید و زمین از آن نور منور گردد که از جانب خداوند متعال به شما عطا بشود. آمین ثم امین يا عباد الله اذكركم ايام الله واذكركم تقوى القلوب إنه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا سوره تها اييه 75 فلا تخلدوا زينة الدنيا وزورها وتقوى الله واستعينوا بالصبر والثبات سوره بقره آیه چهل و شش. ان الله وملائكته يسلون على النبي ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سوره احزاب آیه پنجه و هفت اللهم صل على محمد وعلى آلِ محمد وبارك وسلم پیشگویی درباره تاون تا به صورت منصوم. نشان اگرچه نادر اختیار کس بودست مگر نشان بدهم از نشان زدادارم که آن سعید ز طاعون نجات خواهد یافت که جست و جست پناهی به چار دیوارم مرا قسم به خداوند خیش و عظمت او که هست این همه از وحی پاک گفتارم چه حاجت است به بحث دیگر همین کافی است برای آن که سیه شد دلش ز انکارم اگر دروغ برای اتران چه وعده من من روازگر همه خیزن بهر پیکارم درخواست اعانه برای توصیه خانه. چون امکان انتشار تاآون در آینده بسیار زیاد است و در خانه ما که در بخشی از آن مهمانان مرد و در بخشی دیگر زنان زندگی می کنند کم بوده جاست و شما شنیدید که خداوند متعال وعده داده است که از آن کسانی محافظت خواهد کرد که در چهار دیواری آن باشند و اکنون آن خانه که متعلق به غلام حیدر موطوفی بود که ما نیز در آن سهم داریم درباره آن شریکان ما راضی شده اند که هم سهم ما را بدهند و هم سهم خود را با گرفتن قیمت آن به ما بدهند. بنابراین به نظرم این ویلا میتواند بخشی از خانه ما شود. اما این کار دو هزار روپیه خرج برمیدارد احتمال میرود و زمان تا اون نزدیک است و در هنگام طوفان تاون این خانه از روی مجده خداوند متعال حکم کشتی را خواهد داشت. اما نمیدانم چه کسانی در این بشارت صحیم می شوند. لذا این کار نیاز به عجله و سرعت دارد. با توکل به خدا که خالق و رازق است و اعمال صالح را می بیند، باید در این راستا تلاش کرد. من هم می دانم که این خانه مانند کشتی است، اما در این خانه برای آینده جایی برای هیچ زن یا مرد دیگری نیست، لذا نیاز به توصیه آن است. ناشر مرزا غلام احمد کادیانی